به نام خدای یگانی مهربان سلام این که قوم و ملتی رو در برابر طوفان حوادث حفظ میکنه فقط قوای نظامی نیست انسانهایی با فرهنگ غنی غرنها و هزارها در عرصه تاریخ میمونن و افسان سرایان از همین دستن در واقع اون اونچه که ملت‌های مختلف رو گرد هم میاره آیین‌ها، مراسم، سنت‌ها، پندارها و افسانه‌هایی که از گذرگاه زمان گذشته باشه. در برنامه این هفته هزار افسان افسانه‌ای رو برتون نقش می‌کنم از مردمان روسیه به نام افسانه حلقه انگشتری فولادی. برگرفته از کتاب گسهای از, از ازبکستان، گرجستان، روسیه ویتنام و رومانی با ترجمه از عبول فضل آزموده پدر بزرگ کوزما با نوی خودش وریوشا در روستایی در سرزمین روسیه در هاشیه ی جنگل بزرگی زندگی میکرد. زمستون سختی بود. همراه با باد شدید و برف سنگین. در تمامی این زمستون حتی یه بار هم نشد که هوا کمی گرم بشه و آب برف ذوب شده شتابان خودش رو به داخل خاک برسونه. شبها گرگها و یه یخزد زوزه میکشیدن. پدر بزرگ می گفت اونها در حسادت به مردم زوزه می کشن. آخه گرگا هم دلشون میخواد خواد توی کلبه زندگی کنن. در کنار بخاری لم بدن. بدنشونو بخارونن و دست و پاشونو گرم کنن. عواست زنسون بود که داروهای گیایی پدر بزرگ تموم شد. پدر بزرگ به شدت سرفه می کرد. و از زعف تندرستی خود شکایت داشت و میگفت گفت اگه یه موش از گیاهان کوهی رو دم کنم و بخورم <تصفيق> حتما بهتر میشم ولی <تصفيق> کیسه گیاهام خالی شده واریوشا که تحمل صرفهای شدید پدر بزرگ رو نداشت به روستای همجوار رفت تا برای پدر بزرگ کمی گیاهان دارویی تهیه کنه راه آهن از کنار این روستا میگذشت وریوشا گیاهان دارویی رو خرید و اونا رو توی کیسه کوچیک خودش ریخت و روونه ایستگاه راه آهن شد تا قطار رو تماشا کنه. قطار راه آهن به ندرت توی ایستگاه توقف میکرد و تقریبا همیشه با سر و صدا و سود زنان از کنار اون میگذشت. توی راه آهن روی سکوی ایستگاه دو نفر سرباز نشسته بودن. نه ناگرکشون جلو میومد و حالا دیگه دیده میشد که چجوری با تمام قدرت بخار از جا کنده میشه و از جنگل تاریک دوردست خودش رو به ایستگاه میرسونه سرباز هنوز روی سکوی ایستگاه راه آهن نشسته بودن یکی از اون سربازها ها با دیدن واریوشا گفت زود باش زود باش ببین قطار تو رو به هوا پرتاب میکنه زود باش دختر کچلو لکوموتیف با یه چشم هم زدن به ایستگاه رسید به به هم پیچید و به چشم ها رسبید. بعد صدای تق و تق به چرخ ها شنیده شد و چرخها ها یکی پس از دیگری هم دیگر رو دنبال میکرد واریوشا تیر چراغبر رو گرفته بود و چشمها رو بسته بود مثل اینکه واقعاً واقعا اون رو به هوا بلند کرده و در پشت سر قطار به دنبال خودش کشیده وقتی که قطار رفت سرباز از واریوشا پرسید توی کیزد چیه؟ واریوشا جواب داد گیاهان دارویی برای صرفه های شدید خوبه سرباز با خوشحالی گفت: ها چه خوب! مادر بزرگ من مدام سرفه میکنه سرفه های شدید و دردآور. ممکنه ممکنه یه کمی از این گیاهان دارویی ای رو به من بفروشی؟ واریوشا قرص و محکم جواب داد: نه نه. پدر بزرگ اجازه نمیده بفروشم. اینا برای اونه که سرفه نکنه. سرباز گفت: آه دخترک چکم پوش نازنین تو چقدر جدی هستی واریوشا کیسه یه گیاهان دارویی رو به طرف سرباز گرفت و گفت ولی تو هر اندازه بخوایی میتونی برداری من پدر بزرگا و مادر بزرگاه رو خیلی دوست دارم سرباز یه مشت از گیاهان دارویی خوش شده یه داخل کیسه رو برداشت و توی پاکتی که امراه داشت ریخت و به واریوشا گفت متشکرم متشکرم دختره که زیبا یه به سر چجوری میتونم جبران کنم سب کن ببینم بعد جیبهای لباسش رو جستجو و کرد و قلقه یه فولادی کوچیکی رو پیدا کرد فوتی اون کرد و اون و انگشت میانی واریوشای افسانه ما کرد و گفت دختر کچلوگ مهروون این انگشتر واقعا شگفتانگیزه ببین چه درخششی داره واریوشا با هیجان گفت متشکرم مچکرم امو جان این انگشتر خیلی زیباست بعد با کنجکاوی پرسید اما امو جان شگفتی این انگشتر چیه؟ سرباز جواب داد ها شگفتی و معجزه اون اینه که اگه انگشتر توی انگشت میانی دستت باشه سلامتی میاره هم برای تو و هم برای پدر بزرگید اما اگه انگشتر رو به انگشت سبابت بکنی خیلی خوشحال و شاد میشی و اگه خاصی تمام زیبایی های دنیا رو ببینی باید انگشتر رو توی انگشت آخرت تو بکنی. واریوشا پرسید واقعا همینطوری که میگی؟ سرباز دیگه ای که تا الان سکوت کرده بود و به حرفهای اونا گوش میداد به واریوشا گفت دوست من یه جادوگره به حرفهای اون ایمان داشته باش دخترک واریوشا با خوشحالی گفت آخ خدای من اون یه جادوگره یه جادوگر واقعی بعد از تشکر از سرباز به طرف خونه به راه افتاد تا هر زودتر انگشتر جادویی رو به پدر بزرگ کوزما نشوند شایه افسانی ما با قدم ها و یه شتابان راه خونه رو در پیش گرفته بود و، هر لحظه انگشتر رو لمس می و میچرخون. اون با خودش گفت: خدای من، اون سرباز فراموش کرد به من بگه که اگه انگشتر رو به انگشت اشارم بکنم چی میشه؟ آ بذار بزار حلقه رو به انگشت اشارم بکنم و ببینم چه اتفاقی میافته؟ به بعد؟ واریوشا آروم انگشتر رو به انگشت اشارش کرد، انگشت اشاره واریوشار واریوشا لاغر بود و حلقه در اون گیر نکرد و توی برفها یه کنار جاده افتاد و یه راست رفت به قعر انبوه برفها واریوشا شروع به کنار زدن برفها با دست های خودش کرد ولی از حلقه خبری نبود، واریوشا به گریه افتاد حلقه یه گم گم شده بود پس دیگه برای پدر بزرگ سلامتی نمیاره. دیگه شادی و خوشحالی نداره و دیگه زیبایی های دنیا رو نمیتونه ببینه. واریوشا با گریه به خونه رسید و تمام ماجرا رو برای پدر بزرگ تعریف کرد. پدر بزرگ از دیدن گیاهان داروی خیلی خوشحال شد و فورا یه مقداری از اونا رو دم کرد و خورد و درباره انگشتر انگوشتر گفت ناراحت نباش وریوشای من. ناراحت نباش دختره اون انگش در هر جا که افتاده باشه همون جا هست. از سیدور گمگیش کچلو بخواه و برات پیدا کنه. خب تا اینجا رو براتون تعریف کردم تا یک کمی درباره سیدور براتون بگم. بله، سیدور گنجشک مهربونی بود که روی تیرک خوابیده بود و مثل توپ کوچیک به این طرف و اون طرف تکون میخواد. این گنجشک تمام زمستون رو توی کلبه و در کنار پدر بزرگ کزما بود و مثل خونه خودش زندگی میکرد. سیدور با رویه و اخلاق خودش نه نفقط واریشا بلکه پدر بزرگ رو هم وادار کرده بود تا اون رو از خودشون بدوند. روز بعد واریوشا سیدور گنجشک مهربان رو پیدا کرد و به همراه اون به جنگل رفت واریوشا به سیدور گفت سیدور عزیزم برفها را کنار بزن ممکنه انگشترم پیدا شه سیدور نگاهی به برفهای اطراف انداخت و گفت نگران نباش من سعی خودمو میکنم و بعد اون قدر با بونوکش برف ها رو کنار زد و همه جا رو جستجو کرد که خسته شد. واریوشا با ناراحتی گفت: "اگه اگه انگشترم پیدا نشه من من خیلی قصه میخورم." سیدور دوباره شروع به جستجو کرد ولی تلاشون هیچ فایده ای نداشت و خبری از انگشتر نبود که نبود. ساعتی بعد واریوشا و سیدور به طرف کلبشون راه افتادند در حالی که نومیدی تمام وجود واریوشا رو فرا گرفته بود. شدت بیشتری سرفه میکرد بیچاره پیرمرد تمام زمستون و کنار بخاری نشست و تقریبا از خونه بیرون نیومد و بیشتر از واریوشا آب طلب میکرد و واریوشا هم توی تنگی فلزی آب خنک به اون میراد برف راهها و کلبهای روستا رو پوشونده بود دیگه حتی درختان کاج هم پوشیده از برف شده بودن و این برای وریوش های ما بسیار ناراحت کننده بود چون به هیچ وجه نمیتونست به جنگل بره و انگشترش رو که گم کرده بود پیدا کنه اون بیشتر وقتا خودش رو پشت بخاری پنهون میکرد و آروم از غصه صرفه شدید پدر بزرگ و ناخوشی اون گریه میکرد و خودش رو سرزنش و می میگفت من دختر احمق و دست و پا چه جوری تونستم انگشترم رو گم کنم اگه اونو گم نکرده بودم الان الان پدر بزرگ سلامتیش رو به دست آورده بود به من شاد و خوشحال بودم. واریوشا با گفتن این حرفها از دست خودش عصبانی و ناراحت می شد و با مشت به فرق سر خودش می و به نوعی خودش رو تنبیه میکرد پدر بزرگ از اون میپرسید واریوشا عزیزم با کی هستی این سر و صداها چیه را اندختی و واریوشا جواب میداد پدر بزرگ چیزی نیست با سیدور هستم اون حرف نشنو و خیلی سر شده همیشه میخواد دعوا کنه و پدر بزرگی آروم میخوندی و صرفه چند روز بعد صبح زود سیدور به پشت پنجره پرید و با نوک خودش به پشت شیشه زد و واریوشا رو از خواب بیدار کرد. واریوشا چشمش رو باز کرد و دید از پشت بون آب فرو میریزه. روشنایی گرمی به پشت پنجره تابیده بود و کلاها به غارغار افتاده بودند. واریوشا نگاهی به کوچنده. باد گرم به صورتش میخورد هیجان و خوشحالی تمام وجود واریوشا رو پر کرد و بعد فریاد زد آه خدای من بهار بهار شده بله بهار از راه رسیده بود و برفها همه آب شده واریوشا به اطراف نگاه کرد اولین گله ها یه جنگلی شکوف زده بودن واریوشا با خوشحالی از کلبه بیرون رفت اون شروع کرد به کنار زدن برک هاگ و میوه خالی درخت کاج که دارکوب ها اونها رو به این طرف و اون طرف پرتاب کرده بودن واریوشا با دقت تمام اطراف رو جستجو کرد و یه دفعه فریادی از خوشحالی کشید خدای من حلقه فولادی، انگشترم پیداش کردم. اون اصلا زنگ نزده زده خدای من چقدر میدرخشه واریوشا با خوشحالی انگشتر رو به انگشت میانی دستش کرد و به طرف خونه حرکت کرد اون باید هر چی زودتر میرفت سراغ پدر بزاگش. واریوشا ی افثانه ی ما به نزدیک خونه که رسید از دور پدر بزرگ رو دید که از کلبه بیرون اومده و روی خاک ریز پشت دیوار نشسته بود. واریوشا به پدر بزرگ نزدیک تر شد. با خودش گفت oh, خدای من اینگار پدر بزرگ سلامتیشو به دست برده. پدر بزرگ با دیدن واریوشا گفت واریوشای عزیزم از خونه که بیرون رفتی فراموش کردید در رو پشت سرت ببندی باد توی خونه بیچید و هوای تازه توی کل بدمید و انگار یه دفعه بیماری منم از تنم بیرون رفت میبینی خبری از اون صرفههای لعنتیام نیست الانم میخوام تبر بردارم و برم جنگل یه مقداری هیزم زم کنم بعد با خوشحالی ادامه داد. باید اجاق رو روشن کنیم و نون قندی درست کنیم مگه نه دخترم واریوشا خندید نگاهی به پدر بزرگ این و گفت البته البته پدر بزرگ باید یه جشن حسابی بگیریم سیدور رو هم می میکنیم و بعد با خودش گفت آه خیلی خوبه این انگشتر گیز کار خودش رو کرد پدربزرگ دیگه سرفه نمیکنه و بیماری از تنش بیرون رفته خدای مهربان متشکرم ای خدای مهربان متشکرم واریوشا تمام روز انگشتری رو توی انگشت میانی دستش داشت فقط شب وقتی شب میخواست بخوابه اونو از انگشتش بیرون آورد و به انگشت کوچیکش کرد و مدتی بعد به خواب امینی فرو رفت واریوشا صبح زود از خواب بیدار شد لباس بوشید و از کلبه بیرون رفت سپیده صبح همه جا رو فرا گرفته بود در حاشیه یاسمون هنوز بعضی ستاره ها روشن بودن واریوشا راه جنگل رو در پیش گرفت به میانه ی راه جنگل که رسید ایستاد با خودش گفت این این صدای چیه؟ بدخم شد گوش داد و دستاش رو به هم زد بله گلهای سفید کم کم در حال جنبیدن بودن و در برابر سفیده ی صبح سر می ددن و انگار هر گل صدای زنگی رو داشت. دارکوب به درختها نک واریوشا نگاهی به اطراف انداخت، به نظرش همه چیزی با و می رسید چند لحظه بعد بر فراز شاخه ها مرغ فاخت هم به آواز در اومد. واریوشا در حالی که از تعجب دهنش باز بازمونده بود به همه اینها گوش میداد و لبخند میزد. احساس کرد کسی به طور نامرئی از کنارش عبور کرده و با احتیاط شاخه ها رو کنار زده. واریوشا به فکر فرو رفت و با خودش گفت خدای من این کی بود که از کنارم گذشت من, من نتونستم اتون من نگاش کنم بله واریوشای افثانیه ما نمیدونست که این بهار بود از کنارش آروم عبور کرد خوشحالی به خونه برگشت حال پدر بزرگ کاملا خوب شده بود اونم شاد و خوشحال به نظر میرسید بهار روز به روز گرمتر و شاد مانه تر میشد چنان نوری از آسمون میبارید که چشمهای ریز پدر بزرگ در برابر اون تنگ تر شدند. ولی همیشه خندون بودن جنگل یک بار در گلهای زیبا و, و رنگارنگ شد وریوشا که از این همه زیبایی به حیرت و شگفتی افتاده بود با خودش گفت آه خوب بود انگشتر رو به انگشت اشارم میکردم تو دنیای تابناک رو با تمامی زیبایی هاش ببینم واریوشا به اطراف خودش نگاه کرد به گلها به آسمون صاف و آفتاب گرم همه اونها در نهایت زیبایی جلوگر بودن صدای پرزدن های پرندگان در حال پرواز بر فراز دشتها توجه واریوشا رو به خودش جلب کرد واریوشا دیگه حلقه انگشتری رو به انگشت اشاره نکرد اون با خودش فکر کرد و گفت آه به این راز پی بردم موفق شدم هیچ جای دنیا اینطور مثل روستای ما زیبا نیست بیخود نیست که پدر بزرگ می که سرزمین ما بهشت واقعیه و در برابر چون این سرزمینی هیچ سرزمین خوب دیگه ای وجود نداره. اونچه که براتون نقد کردم افسانهای از مردمان روسیه بود به نام افسانی حلقه انگشتری فولادی برگرفته از کتاب قصه های از, از ازبکستان، گرجستان، روسیه، ویتنام و رومانی با ترجمه از ابوالفضل آزموده پجرشکران کشورهای مختلف از راه متنوع به بررسی افثانه های ملل پرداختند و در نتیجه کوشش های اونها افسانه‌ها و قصه های آمیانی بسیاری گردآوری، تنظیم و رده‌بندی شده که خود کاری فرهنگی و ارزشمند. زار افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالپور، ویراستار الهام اشکم مهران دوستی صدابردار ستاره همیگی کننده زهرا و گل اقزاده تا افسانهای دیگر بدرود